بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره واقعه سخت کوبنده آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ و چی چیست را آگاه که آن واقعه سخت کوبنده چیست؟ روزیست که در آن مردم چون پروانه ها پراگنده می باشند و کوها چون پشم رنگین ندافی شده می باشند پس کسی که و اعمال نیکوی او سنگین شد در زندگی خوش ندانه بسر میبرد اما کسی که و اعمال نیکوی او سبک شد پس به نهگاه او حاویه یعنی دوزه است. و چیزی چیز را آگاه ساخت که این حاویه چیست؟ آتشیست نه حاویه سوزاننده